سلام من محمد جواد محبی هستم و اینجا رادیو آزادی مالیه رادیو آزادی مالی جاییه که یاد میگیریم که چطور عمرمون رو با پول معامله نکنیم همونطور که قول داده بودم قرار شد که کتاب های مختلفی رو که در مورد آزادی مالی و مدیریت مسائل مرتبط با پول هست من به صورت خلاصه و بر اساس فسوری که در اون کتاب ها وجود داره به صورت خلاصه در طی یه هفته ده روز یا دو هفته بسته به حجم کتاب برای شما ارائه می کنم و سعی می کنم مطالب هر فصل رو در قالب یک برگه آچار اجرایی به خدمت شما معرفی کنم که شما بتونین اون موارد رو که نویسنده کتاب روشون تأکید داشته و توصیه کرده به کار ببندید امیدوارم که این دوره دوره خیلی عالی برای شما باشه و تصمیم گرفتم که این رو, این رو به عنوان یک رادیو معرفی کنم چون هرچه افراد بیشتری گوش کنند و هرچه افراد ثروتمندتری بیشترند و هرچه افراد بیشتری باور کنند که میشه ثروتمند شد قطعا برای من و برای شما هم بازخورد بیشتری خواهد داشت اما کتاب اولی که قرار شد راجبش صحبت کنیم کتاب فوقالعاده پول یا زندگی شما نوشته آقای جود مینگوز و خانم ویکی رابینه این کتاب حاوی نه فصل و نه گامه که به ادعای نویسنده ها اگر شما این نه گام رو به خوبی و به درستی اجرا کنید موفق میشین که در راه رسیدن به آزادی مالی تمامیت مالی و هوش مالی قدم بردارید اما این کتاب علاوه بر نه فصل اصلی که داره یک مقدمه هم داره که مقدمه خیلی جالبیه در مورد این صحبت میکنه که ما یک نقشه راه قدیمی داریم در مورد پول. نقشه‌ای که الان تو ذهن ما هست. نقشه اینکه باید یک سرمایه زیادی به ما برسه که ما پولدار بشیم. باید تو قره کشی برنده بشیم. باید ارث بهمون برسه. یا یعنی اینکه باید به یک دستگاه وابسته باشیم. باید رانت داشته باشیم. باید سرمایه زیاد برای شروع داشته باشیم. اگر وارد با این نقشه راه وارد فضای استقلال مالی بخوایم بشیم قطعاً گم میشیم و سرخورده میشیم و به موفقیت هم نخواهیم رسید. این کتاب ادعا میکنه که طرحی که ارائه میکنه در این نه گام یک طرح و یک نقشه راه جدیده. به نظر من کتاب خیلی خوبیه چون علاوه بر اینکه مسائل مالی در اون مطرح شده و خیلی نه... گامهای عملی و مشخصی در مورد مدیریت پول و افزایش پول راجبشون صحبت شده راجب یک سری از مسائل اساسی در مورد رضایت کلی ما از زندگی هم راجب اونها صحبت شده اما فصل یکم رو شروع میکنیم امروز و امیدوارم که در روزهای آینده فصلهای بعدی رو به صورت مرتب از شنبه تا چهارشنبه خدمت شما ارائه بکنم فصل یکم تله مالی یا نقشه راه قدیمی پوله در این فصل آجیب این صحبت میشه که خیلی از ما اگر ازمون سؤال بکنن که شما زندگی براتون مهمتره یا پول یا اینکه حاضرین زندگیتونو رو بدین برای پول بیشتر یا اینکه حاضرین سلامتیتون رو بدین برای پول بیشتر خیلی از ما میگیم که نه قطعا یه جواب نه بهشون میدیم ولی واقعا اینطوره واقعا این که ما الان به پول بیشتر از مسائل مهم زندگی مثل سلامتی یا خود زندگی اهمیت نمیدیم شرایط یه چیز دیگر رو نشون میده شرایطی که اغلب شاغلین دارن تجربهش میکنن یه چیز دیگر رو نشون میده در برابر زندگانی در برابر زنده بودن یک نوع مردگانی نویسند و این کتاب میگن ما دو شدیم یعنی چی یعنی اینکه ما صرفا داریم عمر خودمونو میفروشیم در برابر یه مقدار پول بگیریم و اتفاقا اون پولی رو هم که میگیریم ازش لذت نمیبریم خیلی ها ممکنه بگن که بله من خیلی کار میکنم ولی این کار بیشتر من منجر به درآمد بیشتر من میشه و زندگی مالی بهتری خواهم داشت اما شواهد چیز دیگه نشون میده. درسته که زندگی بیشتر شده، درسته که درآمد بیشتر شده، درسته که لوازم بیشتری برای زندگی خودمون میخریم ولی تعداد افرادی که توانایی مالی خودشون، یعنی اینکه یک سرمایه بیشتر، پسنداز بیشتری داشته باشن، روز به روز دوچار کاهشه یعنی اینکه اگر حقوق افراد مختلف قطع بشن، خیلی سریعتر به, به مرز ورشکستگی مالی می یعنی اینکه تعداد وام ها قرض و بدهی روز به روز برای افزایش پیدا میکنه وام می گیریم اجناس مختلف رو میخریم وام می تلویزیون کفش بازی کامپیوتر موبایل می به این امید که بهمون به شادی بده ولی اون شادیهایی که لازمش هم داریم بهمون به نمیده بعضی هم میگن که درسته من در طول هفته خیلی کار میکنم و وظیفهم که کار کنم باید درآمد داشته باشم ولی آخر هفته و تعطیلات رو خوش میگذرونم اما آخر هفته هم اینطور نیست وقت کوتاه خیلی از ما برنامه برای اون نداریم باید برای خرید به فروشگاه بریم و اتفاقاً وقتی که میرییم فروشگاه و سبد خرید و میریم کنار اون حسابدار و میخوان صندوق حساب کنیم می‌بینیم که همین اجناس رو چند ماه پیش میخریدیم با هزار هزارتون الان باید بخریم ۳ هزار وارد خونه میشیم میبینی که همسرتون غور میزنه باید غذا ساز هفته دیگه تولدشه باید برای سوپراایزش یه چیز بگیریم. حوصله یه توپ بازی و بازی کردن با بچه رو نداریم هه نریم بچه ببریم پارک بهجاش تبلت میگیریم می‌دیم دستش میگییم برو بازی دانلود کن بازی کن شادی این وسط کجاست ببینید ما خیلی از ما م... توقع داریم که وقتی که درآمد بیشتری داشته باشیم وقتی که اجناس بیشتری می‌خریم وقتی که ثروت بیشتری وارد زندگیمون بشه شادتر بشیم <تصفح> یک شادی عمیق نه یک شادی که ناشی از خندیدن از یک جوکی یا لطیفه باشه و پنج دقیقه بعد دوباره به کنج غم خودمون پی ببریم یک شادی عمیق و درونی و فکر میکنیم که با چیزهایی که می‌خریم با وسایلی که به زندگی خودمون اضافه میکنیم شادتر خواهیم بود. بعضی وسایل اینطورند، بعضی ها نیستن. این تجربه خود منه. بعضی‌ها به سرعت عادی میشن، بعضی از خریدشون پشیمون میشیم. بعضی وسایل خیلی ساده رو میخریم ولی ازشون خیلی لذت میبریم. ولی مسئلهی که وجود داره و متاسفانه در حال حاضر در ایرانم میشه تا حدود زیادی اونو پیبرد و نیاز به اثبات نداره اینه که میزان شادی میزان لذت بردن از زندگی لذت عمیق و واقعی منظورمه روز به روز کاهش پیدا میکنه یعنی اگه شما با افراد مختلف صحبت کنید اکثر افراد نالان و غرزن، غرزننده از اوضاع فعلی خودشون هستند بنظر شما چرا این مورد وجود داره خیلی از افراد میگن که آره قبلن ها بهتر بود قبلن ها ما شادتر بودیم زندگی ها ساده تر بود وسایل با اینکه وسایل کمتری داشتیم شادتر بودیم ها میگن که بعضیا که از وضعیت زندگی خودشون در حال حاضر نالان هستن میگن که نمیتونیم بخریم خرج اون با دخلمون سازگار نیست ولی واقعا وقتی که میره خونه های مختلف از تمام شهرهای بزرگ تا حتی کوچک ترین ها هم بررسی میکنی من عموم مردم میگم نه صد درصد می‌بینی که اکثر شیوه زندگی خیلی همه یعنی خیلی شبیه همه یعنی اکثرا تلویزیون ال سی دی دارن موبایل دارن وسایل معمول زندگی دارن یه ماشین دارن اکثر خانواده ها الان ماشین دارن چیزی که شاید 20 سال پیش خیلی رویا بود برای همه ولی میزان رضایت و شادی کمتر شده به اعتراف خود مردم کمتر شده چرا؟ چون دنبال یه چیزی داریم میدوییم و یک آرمانی در ذهنمون داریم که فکر میکنیم که به اونجا برسیم شادتر و خوشحالتر خواهیم شد و انگار که هرچی به سمت اون سراب داریم میدوییم اون سراب داره جابجا میشه و جلوتر میده یه مسئله خیلی مهمی که در این کتاب وجود داره و من یکی از به اصطلاح تفکرات یا یکی از نکات اصلی که گرفتم و ملکه ذهن من شد و خیلی وقتا موقعی میخوام کاری رو انجام بدم وقتی که یک اشتباه مالی میکنم و میبینم که رضایتی به من نداد او خریدی که انجام دادم دوباره برمیگردم به این موضوع که میگه که خیلی از ما الان میگیم که بیشتر بهتر است آیا واقعا بیشتر بهتره زندگی فعلی ما کلن خیلی از جنبه هاش در مورد پوله. حتی آرزوهایی که میخوایم برسیم فکر میکنیم با پول داره حل میشه. هایی که میخوایم ازشون فرار کنیم فکر میکنیم می که با پول حل میشه. درد و رنج، کاهش درد و رنج، رفتن به یه جای بهتر، همه چیز رو در زمینه پول میبینیم و خریدن فکر میکنیم که خریدن فلان جنس یا فلان خدمت یا فلان خونه، فلان ماشین با اسم میشه که شادتر و خوشحالتر باشیم و امید رو هم بخریم ولی اینطور نیست چون اگه اینطور بود فرانه میزان درآمد ما میزان حقوق اکثر افراد بیشتر شده یعنی وسال زندگی زندگیمون بیشتر شده ولی اون میزان شادی و رضایت کمتر شده بنظر شما چه دلیلی میتونه این موضوع داشته باشه بین بچه که به دنیا میاد انسان که به دنیا میاد یک دستی از بیرون میاد بهش غذا میده بهش آرامش میده بهش سرپناه میده بهش پوشاک میده و شروع میکنه به جمع کردن متعلقات شروع میکنه به جمع کردن وسایل هرچی وسایل بیشتری میخره باعث لذت بیشتری میشه مثلا یک بار دو چرخی میخواد دوچرخی میخره خوشحالتر میشه ایدی میگیره خوشحالتر میشه همینطور این رابطه بین شادی و پول در ذهن ما شکل میگیره یعنی فکر میکنیم که هر چقدر که پول بیشتری که منجر به خرید سوال بیشتری میشه وارد زندگی ما بشه شادتر خواهیم شد بعد از چند درآمد خودمون کسب میکنیم شاغل میشیم لوازم خونه میخریم اتومبیل میخریم مبلمان میخریم سرویس طلا میخریم پول در حال برطرف کردن نیازهای ما ما از پول خیلی بیشتر لذت میبریم تا اینکه پای لوازم لوکس به میون میاد زندگی ما با کار بیشتر و پول بیشتر عجیل میشه یعنی هی کار بیشتری میکنیم که پول بیشتری در که ف... بتونیم لذت بیشتری رو بخریم اما یه نشانه های خطرناکی پریدار میشه من اینو تو زندگی خودم دیدم وقتی که دارم یه چیزی رو میخرم وقتی که دارم یک, تج... یک جنسی رو میخرم دیگه مثل قبل هیجان زده نمیشم شاید موقعی که دارم اونو میخرم خیلی خوشحال میشم ولی وقتی که میام صورت حسابشو بررسی میکنم میگم واقعا ارزشش داشت که من اونو بخرم یک نشانه خطرناکه نشانه خطرناکه این که ما زندگیمون خیلی از اون نیازمندی‌ها و مسائل اولیه لوازم مورد نیاز اولیه پر شده و ما به دنبال خوشبختی هستیم ولی هرچی که می‌خریم ببینیم که آیا من این باز شده که من بشم خیلی از, وقت، خیلی از اوقات با بعضی های که صحبت میکنیم خودمون که با هم صحبت میکنیم با دوستان که صحبت میکنیم حسرت دورانیو میخوریم که شاید پول کمتری داشتیم ولی سمیمیتر بودیم بیشتر همدیگر رو میدیدیم یکی در فصل اول کتاب از زندگی شما یک نمودار خیلی خوب و معروف معرفی میشه به اسم نمودار کامیابی یا فولفیلمن کرف دقیقا همین مسئالی که من خدمت شما گفتم راجوی صحبت میکنه. میگه که من وقتی که ما شروع میکنیم به پول خرج کردن، که پول بیشتری خرج میکنیم، میزان کامیابی،, کامیابی ما در زندگی و احساس خوبی که در زندگی داریم روز به روز بیشتر و بیشتر میشه. ولی تا یک جایی میرسه. یعنی ما وضعیت راحتی، صرف ناپوشایی، خورد خوراک، نرث تهیه میکنیم، یه سری لازم لکس هم وارد زندگیمون میکنیم. ولی یک جایی میرسه که هرچی وسایل بیشتری میخریم منجر به شادی و لذت و اون میل رضایت درونی عمیق ما نمیشه. همه شما شاید اینو تجربه کرده باشید اون جایی که نویسندگان این کتاب میگن که اون نقطه اوجی وجود داره که بهش میگن کافی یعنی جایی که کافیه جایی که وسایل زندگی ما کافیه جایی که مادیات چیزی به اه اه خوشبختی و کامیابی ما اضافه نمیکنه از اونجا اگه وسایل لوکس بیشتری وارد زندگیمون بکنیم موجب نارضایتی میشه یعنی اینکه من میگم که من رفتم تو نه شب دارم اضافه کار میکنم من فلان کار میکنم من اینقدر سخت کار میکنم که برای تو فلان چیزو بخرم یا برای خودم فلان چیزو وسیله رو بخرم ولی باز اون بچه یا اون همسر قد دانش نیست یا خودم لذت نمیبرم ازش این نقطه که که ما از اون چیز کافی از اون نقطه کافی رد شدیم و اینجا اثر معکوس ممکنه پیدا کنه یعنی چیه یعنی که ما وسایل بیشتر میخریم حالا شروع میکنه به کامیابی کمتر شدن. چون فکر میکنیم که داریم عمرمون رو میفروشیم وقتی اونو میفروشیم بهجاش پول میگیریم می, می یه سری وسایل میخریم و موجب رضایت و خوشحالی ما نمیشه. کافی نقطه اوج نقطه اساسی تو منحنی کامیابیه البته میشه اونو بالاتر هم برد یعنی میشه از این نقطه رضایت و کامیابی بیشتری داشت که در فرصای بعدی به اون صحبت میکنم اما یکی از مهمتره که باعث میشه این بفهمیم که از کامیابی داریم رد میشیم یا نقطه کافی چیه در این کتاب یک مشخصه خیلی خوب میگه یک مشخصه به اسم کلاتر یا به هم ریختگی هم ریختگی یا خرطوپرت یا کلاتر یه چیزیه که ما وسایل مختلفی تو زندگیمون داریم ببین ما زندگی هممون این وس... پر از این وسایل شده یعنی اینکه هارد کامپیوترمون پر از فایل های مختلفیه که ازشون استفاده نمی کنیم هرس زدیم که 80 گیگ مثلا فایل آموزشی زبان جمع کنیم 60 کتاب بخریم در مورد مدیریت امور مالی ولی هیچکدومشون نخونیم تمام وسائلی که وارد زندگی میشه وسایل قدیمی یا نه میبخشیم نه ازش استفاده میکنیم میذاریم بوچه امباره اینا بهش میگن خیر و پت. اینا جاییه که نقاطیه که علاوه بر این که رضایت زندگی ما رو کم میکنه باعث میشه که نعمت و ثروت بیشتری وارد زندگی ما نشه مسئله که وجود داره این که خیلی از فروشگاه‌های بزرگ در همه ها چه فروشگاه‌های زنجیره‌ای خریروار، هایپر های بزرگ چه فروشگاه‌های خرید پوشاک یا هر لوازمی چه فروشگاه‌های اینترنتی چه تبلیغات تلویزیونی بسیار هرفا ای و بسیار قدرتمند تبلیغ می‌کنند و خیلی وقتا افرادی که خیلی ادعاشون میشه که ما اصلا تحت تاثیر تبلیغات قرار نمی‌گیریم ولی بعضی این فضاها میشن، وقتی خارج میشن میدن که یه چیز خریدن. و این موجب بیشتر شدن و بیشتر شدن این به هم ریختگی ها و این خرتوپرد ها در زندگی ما میشه ببینید من با خریدن و با افزایش نعمت در زندگی و چیزهایی که باعث کامیابی من میشه مشکلی ندارم ولی اینکه انباشته کنیم انبار خودمون رو و وسایل و همه جای خودمون در حال ترکیدن باشه از وسایلی که نمیدونیم چه جور ازشون استفاده میکنیم شست است شلوار و پیراهن و کفش میخریم و ازشون استفاده نمیکنیم اینها علاوه بر اینکه رضایت ما رو کم میکنه باعث میشه که جلوگیری بشه از ورود ثروت به زندگی ما گام اول عملی که در مورد فصل یک این کتاب پیشنهاد میده آشتی با گذشته است یعنی چی یعنی اینکه به صورت کلی ببینیم که در گذشته خودمون چه هایی تونستیم حالا هر چند سالی که داریم کار میکنیم چه داراییهایی تونستیم جمع کنیم و چه مقدار اون رو خرج کردیم و الان چه چیزی برای نشون دادن داریم یه نکته مهمی که وجود داره این که ببینید ما یکی از بزرگترین سرزنش کنندگان خودمون هستیم یعنی دائما چه به صورت افکار چه به صورت صحبت‌های مکالمات های درونی که با خودمون داریم دائما داریم با خودمون حرف می‌زنیم و خودمونو رو بابت کارهایی نکرده و کرده سرزنش می‌کنیم و شرمنده می‌شیم از کارهایی که کردیم و نکردیم شعار این کتاب اینه نو شیم نو بلیم نه کن نه احساس شرمندگی داشته باش نه سرزنش کن خودتو ببینین ما خیلی وقتا اشتباه های خواه کردیم و اشتباهی خواهیم کرد بنابراین بهتره که دست از این کار برداریم و با بازخورتهایی که میگیریم سعی کنیم که سیستم خودمون رو بهبود بدیم گام اول که آشتی با گذشته هست به شما میگه که شما شاید این موضوع به خاطر در تورم بالایی که ما در ایان تجربه کردیم سالهایی گذشته خیلی موضوعیت نشتباشه ولی میان میگه که شما بیان ببینید اگه کارمند هستین یا هر شغلی که دارین تو این چند سالی که دایج کار میکنین چقدر درآمد کسب کردین کارمندا مثلا اونای که یک جای ثابت بودن خیلی خوب میتونن این پول در بیارن. مثلا سال 94 سال 93 ی حدود تقریبی حدس بزنی که درآمد سال چقدر بود سود حاصل از بانک چقدر بود اگه اجاره جایی چیزی داشت اجاره دادین چقدر بود یا اینکه کار اضافی کردین به صورت پروژه‌ای به یه نفر یه خدمت یا سرویسی دادین، نمیدونم خرید و فروش و ماشین کردی یه سودی داشتین، کل درآمدی که میتونیم بگین در چندین سال گذشته به دست چقدر بود؟ حالا تمام داراییاتون چقدر می‌ارزه؟ خونه‌تون، اتومبیل‌تون، همه لوازمی که تو خونه دارین، همه وسایلی که دارین، همه چیزی که تو انبارتون دارین، همه چیزایی که برای نشون دادن دارین، چقدر دارایی جمع کردین؟ از طرف دیگه تمام وام ها و بدهکاری و اقاساتتون هم لیست کنین خیلی کار سحه این موضوع چون هم اون میدونیم خب حالا اگه تمام دارایی ما هامون منهای من های تمام بدهی ها میکنیم یک صورت کلی به دست میاد که ما مینیم می که کل درآمدی که داشتیم این کل درآمد منجر به چه دارایی شده خب یه موضوعی که وجود داره اینه که نرخ مثلا مبلغ خونه یا هزینه خونه در ایران خیلی رشد زیادی داشتیم ممکن ما یه موقعی یک 20 میلیون تومن وام مسکن رفتیم یه خونه خریدیم الان اون خونه قیمتش چند برابر شده ولی باز نسبت به چون نسبت به گذشته اون یک دید روشنی میده حداقل که تو چند سال گذشته چند میلیون درآمد داشتیم الان چقدرش تونستی پسنداز کنی خیلی کار مهم و مفیدیه که انجام بدین چون یک بار فقط یک بار قراره این کارو انجام بدین لطفا لطفاً اگه میخوان به آزادی مالی برسین این رو انجام بدید. یک طرزنامه تهیه می‌کنیم که در دوران زندگیمون چقدر درآمد داشتیم، چقدرش به دارایی تبدیل شده، چقدرش هم بدهی داریم. ممکنه آخرش خودتون یا همسرتون تعجب کنیم که واقعاً من اینقدر دارایی داشتم یا من, واقعا من اینقدر حقوق گرفتم یا ممکنه نسبت به دارایی‌هایی که جمع کردین آگاهی بیشتری داشته باشین و کنین. لازم نیست که این مرحله رو خیلی کامل انجام بدین تا گام انج... گام بعدی رو شروع بکنین میتونین اونو توی دوره تکمیل کنین ولی حتما این برگه رو که در گروه تلگرامی میذارم که بر اساس همین کتاب تهیه شده اونو دانلود کنید و راجبش فکر کنید. یه برگر رو یه هفته آینده یه هفته آینده این با خودتون داشته باشین راجعش فکر کنید که چقدر درآمد داشتین چقدر شو تونستین به دارایی تبدیل کنین و چقدر بدهی برای خودتون تراشیدین، و الان چقدر دارایی برای ارائه دارین این گام اولیه که در این کتاب توضیح داده شده و فصل دوم کتاب که در مورد دیدگاه مادرمود پول هست رو فردا خدمتتون ارائه میکنم ولی قبل از این که این فایل صوتی رو تموم کنم میخواستم دو نکته رو خدمتتون خدمتون کنم نکته اول این که این کتاب وفاداری و نسبت به کتابهایی که راجعشون صحبت میکنم حفظ میکنم یعنی اینکه من میگم که این کتاب نویسندگانش این نظر رو داشتن و من فقط راجع به اون فصل اون کتاب صحبت میکنم بنابراین ممکنه بعضی از خسمتاش با نظرهای شخصی خود من متضاد باشه یا اونو قبول نداشته باشم. نکته دوم این که در این کتاب در کتاب پولیا زندگی شما خیلی راجع رضایت و قناعت صحبت میشه. من این موضوع رو کاملا با اعتقاد خودم قبول دارم که ما اگر انتظاراتمون رو نسبت به زندگی کم بکنیم و اگر این مسائل این کتاب رو رعایت بکنیم به رضایت بیشتری در زندگی خواهیم رسید. ولی این نافی یک مسئله نیست. اگر شما خواننده مطالب وبسایت یک ریال باشین میدونی که من در اونجا مقاله هایی نوشتم درمونی که ما باید که خود جاه طلب باشیم. من خودم فکر می کنم که یکی از مشکلات من در گذشته عدم جاه طلبی بوده. جاه طلبی این نیست که من هرس بزنم برای پول. جاه طلبی اینه که ابعاد زندگی خودم، های خودم، استعدادهای خودم رو کش بیارم، ماهیچه های خودم رو کش بیارم تا به افق‌های جدیدی از زندگی برسم. نه اینکه هرس بزنم به خاطر پول، پول در بیارم صرفاً به خاطر اینکه میخوام پول در بیارم. این دکترم بگم که این موضوع، موضوع جاه طلبی و در نوادیدن های تازه برای زندگی ما ربطی به رضایت نداره من میتونم از زندگیم رضایت کامل داشته باشم، شادی کامل داشته باشم از این چیزی که هستم، ولی میل به پیشرفت و ارتقاء سطوح مختلف زندگیم از جمله قابلیت درآمد و قابلیت سرمایه گذاری داشته باشم. برگه تمرینی، تکسافی، تمام مطالبی که خدمت شما از کردمو و از زیر همین فایل صوتی در تلگرام و در وبسایت یکریال یک دانلود کنید و اگر میخواییم نتیجه بگیریم طبق معمول باید اون کار انجام بدید و لطفا اگر فکر میکنید که این فایل های صوتی برای دوستان شما مفیده این فایل ها را برای اونها هم فوروارد کنید از طریق تلگرام شاد و ثروتمند باشید